وضعیت کنونی جاده های ایران چگونه است؟ به نظر من وضعیت های ایران مناسب است. من چند بار با اتوبوس به شهرهای مختلف سفر کردم و سفر در ایران لذت بردم. من هم سفر با اتوبوس و خودروی شخصی را بسیار دوست دارم. خوشبختانه در طول جاده ها امکانات رفاهی خوبی فراهم است. درست می گویی. یادم هست که در چندین نقطه مسیر، مسجد، رستوران و مسافرخانه را در کنار هم دیدم. برای فراهم شدن آسایش بیشتر مسافران، این خدمات متمرکز در طول راهها در نظر گرفته شده است جاده های کنونی در همان مسیر جاده های قدیمی است؟ تا حدی اولین جاده آسفالته در سال 1911 در ایران ساخته شد که در واقع همان مسیر عبور کاروانها را پهن و نوسازی کردند مسلما زیاد شدن اتومبیل ها و نیاز به راه های مناسب این را ایجاب میکرد. همینطور است که می گویی، اکنون حتی روستا ایران جاده های مناسب دارند و بزرگ و آزاد راه زیادی نیز در ایران وجود دارد. مثل بزرگ راه تهران قم من چند بار از آن بزرگ را عبور کردم بزرگ راه تهران قم بخش کوچکی از آزادراه های ایران است بله شنیدم که از تهران میتوانیم با آزادراه های ایمن و جدید به مشهد، اصفهان و یا تبریز سفر کنیم